از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق شب خدایی که در همین نزدیکیه سلام و درود بر شما همراهان شبانه آیا تا به به این فکر کردیم که چرا افثانه ها فراگیرن علت فراگی شدن اونا چیه؟ حقیقت امر اینه که افثانه ها مردمی ترین هنرند و مسائل توده مردم رو در قالبی ساده، روان، پرکشش و سرگرم کننده مطرح میکنن و همین ویژگی از دلایل فراگیر شدن افثانه هاست البته نباید تصور کرد که جذابیت و کشش تنها عامل دوام حیات افثانه اون افسانه رو تداوم و مانایی بخشیده ضرورتی درونی اضافه بر سطح فرهنگی جامعه است در این مجال شبانه افثانه ای رو براتون نقل میکنم از مردمان سرزمین آزربایجان به نام افثانه پادشاه و آهنگر نقل از کتاب افثانه های آزربایجان برگردان حمید بخش منده سگویان شیرین گفتار چون این حکایت کردند که در گذشته های دور پادشاهی زندگی میکرد که دارایی و ثروت زیادی داشت فرمان پادشاه در هفت اقلیم به اجرا در میومد و شاهان و حکرانان ممالک دیگه با شنیدن نامون لرز برندامشون میافتاد. اما پادشاه افسانی ما با وجود این همه ثروت و قدرت غم به جونش افتاده بود و لحظه ای اونو رها نمی کرد. شدت قم و درد پادشاه رو میشد با یک نگاه تشخیص داد اما کسی جرعت اونو نداشت که در این بار از پادشاه سوال کنه تا اینکه روزی پادشاه وزیرش رو به نزد خودش فراخوند و گفت وزیر وزیر خودت به خوبی می دونی که من چه از نظر جاه و جلال و چه از نظر نیروی نظامی و قدرت جنگی هیچ کم کسری ندارم من حتی بر هفت اقلیم حکومت می کنم و با هر پادشاهی وارد جنگ بشم پیروزی من و شکست طرف مقابل را از قبل میتونیم پیش پیشبینی کنیم وزیر تکید کنن گفت بله خربان بله بیشک همینطوری که میفرمایی. پادشاه آهی کشید آدم داد اما اما وزیر با این همه قدرت من در دست دشمنی درونی اسیر. دم و از طاقت من نفسون تره و این غم و اندوه منو سخت گرفتار خودش گرده من مجبورم که پیش مردم حس ظاهر کنم و روزا بگم و تو بخندم ولی ولی ولی شبها که تنها میشم در خلوت خودم از شدت غم و در تا سبیده صبح دارم و خواب به چشمان من را پیدا نمی کنه پادشاه سکوت کرد و به فکر فرو رفت وزیر به خودش جرأتی داد و پرسید قبل یارم جسارتا میپرسم ببخشید غم و اندوه شما از چه چیزیه پادشاه آه سردی کشید و گفت آه وزیر وزیر دلیل غم و اندوه و پریشونی من اینه که میبینم روزی باید از این همه ثروت و قدرت دست شسته و بالاخره بمیرم البته قبول دارم که مرگ حقه و کسی نمیتونه از چنگال مرک فرار کنه اما, اما،, اما وقتی میبینم که پادشاهی و سلطنت توی بادم با مرگ من پایان میپذیره تلخی مرگ برام سچندان میشه و دلم رو به درد گره آخه من وسی فرزندی ندارم تا بعد از مرگ وارث این تاج و تخت باشه آیا به تو بدبختتر و درد من تر از من در دنیا کسی هست وزیر مکسی کرد و گفت پادشاه به سلامت باد در دنیا آدم بی درد نمیشه از قدیم گفتن در این دنیا کسی بی غم نباشد پادشاه سری تکنداد و گفت اگه در این دنیا آدم درد مندی وجود داشته باشه دست کم در سرزمین من نباید آدم بیغم وجود داشته باشه پادشاه و وزیر در این مورد خیلی با هم دیگه گفتگو کرده آقابت شاه دستور داد هر طور که شده آدم بیدردی رو پیدا کرده و نزدش بیاره از اون روز افراد شاه در به در به دنبال آدم بیغم و غصه ای بودن اما هرچه جستجو کردن و با هر هرکه سر صحبت رو باز میکردن میدیدن بلاخره دردی داره مأموران پادشاه چون در جستجو خودشون به نتیجه ای نرسیدن به نزد پادشاه برگشتند و گفتند قربان هرچه گشتیم نتونستیم آدم بی دردی پیدا کنیم پادشاه با شنیدن این حرف باز هم دست از سر سختی بر نداشت و به وزیرش گفت وزیر من نمیتونم چنین این چیزی رو باور کنم از تو میخوام که فردا هر دو لباس مبدل بپوشیم و به طور ناشناس بین مردم بکردیم اون وقت میبینی که چجوری آدم بی درد پیدا میکنیم فردای اون روز پادشاه و وزیر با لباس مبدل به جسجو پرداختن اونا همینطور که میرفتند چششون به مغازه افتاد. آروم وارد مغازه شدن و سلام کردن. صاحب مغازه با خوشرویی به استقبال اونا اومد و گفت خیلی خوش اومدین صفا آوردین. بفرمین چه خدمتی از دست من ساخته است. وزیر گفت راستش ما خسته خرید نداریم. داشتیم میگشتیم گفتیم توی مغازه شما یک کمی بشینیم و استراحت کنیم. البته اگه اجازه بدیم صاحب مغازه که فهمید این دو نفر مشتری نیستن و غصه خرید ندارن رفتارش تغییر کرد و با اخمتخ گفت البته که اجازه نمیدم من هزار جور گرفتاری و بدبختی دارم آدم بیکاری نیستم که بشینم و با شما حرف بزنم حالا میخوام در مغازه رو ببندم و برم پادشاه گفت ببخشید میتونم بپرسم گرفتاری و بدبختی شما چیه؟ صاحب مغازه آهی کشید و گفت آ اون چی بگم از خدا پنهون نیست از شما چپه مدتیه که بازارم کساده خرید و فروش خود به خود کساد شده اگه گاهگداری گاه چیزی میفروشم نسیه است. انگار مردم پول پلهی ندارن با این انبارم پر از جنسه اما از پول خبری نیست که نیست پادشاه دید که مرد مغازدار واقعا دردمنده این بود که به بحانی بلند شد و به همراه وزیر از مغازه بیرون ماده. شاه و وزیر به راهشون ادامه دادن رفتن و رفتن تا به باغون پیره رسیدن که مشغول باغونی بود از حال روزگار باغون پرسیدن باغون با آه و ناله گفت حالم کجا بود <تصفح> از مال دنیا فقط یه باغ دارم که میرابای شاه آب اونو قطع کردن حالا درخت های باق از بیابی دارن خوش میشن و از بی میرن. موندم چه خاکی به سرم ریزن و وزیر باغبون رو با درد و غمش تنها گذاشتن و رفتن مسافتی رفته بودن که مجلس ازایی رو دیدن وارد مجلس شدن و گوشه ای نشستن بعد با آدمایی دورو دور و برشون سر صحبت رو باز کردن اما حتی یه نفر آسود خاطر و بی درد و غم نبود یکی میگفت من اینه که تنها پسرم به دستور پادشاه به دارا بیخته شده پاید چی کار یکی دیگه میگفت من پیرم و من باید در ندارم بیشتر وقتا گرستم چیزی برای خوردن ندارم خلاص اونا پای صحبت هر کسی نشستند هر کسی که اونجا حرف میزد دل پرغم و غصهی داشت پادشاه رو کرد به وزیر گفت وزیر اینجا مجلس عذااست طبیعی که در اینجا همه دردمند و ناراحت باشند بهتره به جای دیگری بریم ببینیم چیزی دستگیرمون میشه یا نه وزیر سری تکون داد و برنبال پادشاه مجلس عضا رو ترک کرد وزیر و پادشاه رفتند و رفتند تا اینکه به مردی رسیدن که زیر درختی نشسته بود و داشت آواز میخوند آوه. پادشاه گفت: آها، پیداش کردی. معلومه این مرد غم و ای نداره که اینجوری زده زیر آواز. حتما دلش خوشه و غم و ای نداره. وزیر گفت: قربان، امیدوارم همینطور که میفرمید باشه ولی از رفتار ظاهری مردم نمیشه به باطن و درون اونها پی برده پادشاه گفت بهتر صبر کنیم تا هر وقت این مرد خواست بره با هم دنبالش راه بیافتیم اونا یه گوشه ای استادن تا مرد آوازخوندنش تموم شه و سود زنان راه بیفته. پادشا و وزیر هم سایه به سایه به دنبالش را افتاده مرد وارد خونه شد و در رو پشت سر خودش بست چند دقیقه بعد وزیر کوبه در رو به صدا در آورد مرد در رو باز کرد و گفت بفنید با کسی کار نشین؟ وزیر گفت ما, ما دو نفر در این شهر قریبیم آیا اجازه میدین امشب رو منزل شما مهمون باشیم؟ مرد گفت بفهمید بفهمید مهمان حبیب خداست خونه خودتونه. وقتی پادشاه و وزیر وارد خونه مرد شدن دیدن شکوه و جلال خونه مرد اگه بیشتر از قصر پادشاه نباشه کمتر از اون نیست. موقع شام هم سفره رنگین در برابر مهمون ها گسترده شد. مرد رو به کرد کرده گفت بفرمید خواهش میکنم غذا سرد میشه بفهمید وزیر گفت نه اول شما بفرمایید تا ما هم احساس راحتی کنیم مرد آهی کشید و سکوت کرد پادشاه پرسید میتونم بپرسم چرا آه میکشی از چیزی ناراحتی مرد گفت از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون من من دست ندارم تا بتونم غذا رو به راحتی بخورم وزیر خنده کوتاهی کرد و گفت: <تصفيق> "مثل اینکه شوخید گل کرده. ما که داریم دستای تو رو می‌بینیم." مرد گفت: اونچه چه شما میبینین دستایی من نیستن. اینا آستینای کت منن که از کاه پرشون کردم." پادشاه و وزیر ناباورانه آستین های کت مرد رو وارسی کردن و دیدن بله. مرد راست میگه. وزیر با ناراحتی پرسید خب میتونی به ما بگی چه کسی تو رو به این روز اندخته؟ مرد آه بلندی کشید و گفت آه پادشاه پادشاه ظالم و احمق این مملکت منو به این روز اندخته پادشاه با شنیدن این حرف عصبانی شد اما وزیر اونو به آرامش دعوت کرد و پرسید بگو ببینم چه خطایی از تو سرزده بود که پادشاه این بلا رو به سرت آورد مرد گفت اگه که یکم یکم صبر کنیم براتون تعریف میکنم یکم صبر کنیم درد داستان زندگیش رو اینجوری آغاز کرد من آهنگر بودم و توی حرفه خودم مهارت خیلی زیادی داشتم. یه روز یکی از گزمه پادشاه به سراغم اومد و گفت پادشاه دستور داده تا براش چون شمشیری بسازم که وقتی زربهی با اون به سنگ بزنه سنگ رو دونیم کنه و لبش سر موی خمبر نداره منم شمشیری رو که پادشاه سفارش داده بود ماهرانه ساختم و به همون گزم تعویل دادم اما چند روز بعد جلادان پادشاه به سراغم اومدن و بدون هیچکونه سؤالی با شمشیر دستایی من قطع کردم من در حالی که خون از دستم جاری بود از اونو پرسیدم که جرم من چی بوده یکی از جلادا گفت این سزای کسی که به پادشاه نارو زده و اون شمشیر تغلبی رو براش میفرسته بعد من گفتم نه نه حتما کلکی توی کاره من شمشیر مورد نظر پادشاه رو ساختم همونی که میخواست اما کسی به حرفم گوش نداد که نداد از اون به بعد هر جا که میرسم از ظلم پادشاه میگم و اونو لعن و نفرین میکنم مرد سکوت کرد و بعد پادشاه گفت ای مرد تو که این همه مورد ظلم و ستم قرار گرفتی پس چرا اونطوری آواز شاد میخوندی و انگار هیچ کمی نداشتی ها؟ مرد گفت وقتی من شروع به لعن و نفرین پادشاه کردم سخنچینهای پادشاه این خبر رو به گوش پادشاه رسوندم به این بار پادشاه وزیرش رو فرستاد سراغم که پادشا گفته اگه به پادشاه بد و بیرا بگم فرمان قتلم رو صادر می کنه منم از اون روز به بعد به جای لعن و نفرین پادشاه آواز می خونم و از شکایت بستم البته توی دلم خون گریه می کنم و پادشاه رو لعن و نفرین می کنم وزیر گفت باعث این همه ظلم گزمه است نه پادشاه. پادشاه هم در تایید سخن وزیر اضافه کرد و گفت بله درسته پادشاه بی تقصیر مرد شاید واقعا به اون دروغ گفتن و بهش کلک زدن آهنگر جواب داد نه نه نه نه مقصر اصلی خود پادشاهه شاید کسی پیش پادشاه بیاد و بگه خروس من روزی 15 تا تخم مرغ میذاره آیا پادشاه باید این حرفو قبول کنه اگه قبول کنه باید آدم ابلهی باشه نه پادشاه پادشاه و وزیرش دیدن که آهنگر از همه اونایی که قبلا بودن دردمندتره منتره حرف های آهنگر آنچنان اونا رو متحصیر کرده بود که اون شب تا صبح پادشاه و وزیر نتونستن بخوابن نصفه شب وزیر آهسته از پادشاه پرسید قبله آلم بیدارین صدور فرمان قطع کردن دستای آنگر رو به خاطر دارین؟ پادشاه آهی کشید و گفت بله بله وزیر به خاطر دارم حالا میفهمم که تمام دستورهایی که تا الان از طرف من ساده شده به نحوی بوده که آنگر برامون تعریف کرد من به حرف اطرافیان رو اعتماد کردم و حرفای دیگرون رو گوش ندادم راستش رو بخوای به این نتیجه رزیدم که باعث تمام قموصه مردم در حقیقت خود من هستم اما از این به بعد تصمیم دارم که با مردم به عدالت رفتار کنم موقع رسیدگی به شکایات مردم هم شاکی و هم متهم هر دو رو احزار و بعد از شنیدن ادعاهای هر دو طرف قضاوت کنه. کنم وزیر قصد دارم از اینجا که رفتیم از گزمه بپرسم ببینم اون چه آهنگر راجه به اون گفته حقیقت داری یا نه وزیر آهسته گفت آه اشتباه پادشاه اینکه از آدم حق باز انتظار راستگویی درا قربان اگ اجازه بدین من خودم این ماجرا رو پیگیری کنم پادشاه پذیرفت و قرار شد وزیر ماجرا رو دنبال در دای روز پادشاه و وزیر از آهنگر خداحافظی کرده و به دربار بریشن پادشاه به وزیر کرده گفت وزیر حالا بگو ببینم برای تحقیق درباره جرم گزمه چه ترهی داری؟ وزیر گفت قربان. دستور بدین تا اعلام کنن که فردا توی میدون بزرگ شهر مسابقه شمشیر بازی داریم. هر کس در این مسابقه برنده بشه هدایه از صرف پادشاه دریافت کنه. اون وقت گزمه با شنیدن این خبر حتما توی مسابقه شمشیر بازی شرکت می و حتما هم همون شمشیری رو که آهنگر ساخته با خودش به میدون مسابقه میاره. پادشاه سریع و گفتم. فکر خوبیه وزیر آفرین بر تو آفرین فردای اون روز میدون شهر پر از تماشا چی بود در باریان و اشراف و ثروتمندان شهر هم اومده بودن بعد از نواختن شیپور مسابقه شمشیر بازی شروع شد پادشاه و وزیر هم در جایگاه مخصوص خودشون نشسته بودن و گزمه رو زیر نظر داشتند در این موقع گزمه با شمشیری که مثل آینه می درخشید سپر طرف مقابلش رو با یه ضربه به دونیم کرد و حریف رو هم زخمی خونین به گوشه پرد کرد پادشاه بلا فاصله دستور داد تا گزمه رو دستگیر کنن و به نزدش بیارن وقتی گزمه رو آوردن و پادشاه شمشیر رو از نزدیک نگاه کرد دید که بله شمشیر همون شمشیریه که آهنگر براش ساخته بود حتی اسم آهنگر هم روش حک شده بود با ناراحتی و عصبانیت دستور داد تا با همون شمشیر گزمه رو به سزای مارش برسون افثانه آزری پادشاه و آهنگر رو از کتاب افثانه های آزربایجان ترجمه بخشمند براتون نقل کردم قصه ها و افثانه ها ما رو به دوران های باستانی هدایت می‌کنن از این رو قصه ها و افثانه ها رو به دالانهای زمان تأبیل کردن از طریق تحلیل دقیق قصه ها و افسانه‌هاست که میتونیم به اندیشه گذشتگان و نسل های پیشین پی ببریم و با شناخت حیات اونها عوامل مهمی رو که در زندگی انسانهای گذشته نقش داشتند بشناسیم و سیمای زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی دورانهای گذشته رو خوب ترسیم کنیم اثر افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالکپور ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی